بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع باب تهارم في التعريف والتنكير باب تهارم اكتانة جنس الملاعين بس مثل ما عايزش هسيب في جوف تبود ده حش باب يلو بياره نبتان باب؟ أنا رسي دم باب تهارم الباب الرابع في التعريف والتنكير باب تهارم ده راضي الله تحس؟ معرفه ذاك يا تعلق الغرض بتسبيب المخاطب ارتباط الكلام ببعيد الصالب مقابله وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقابل التذكير هرگاه هدف از فهماندن مخاتب تعلق داشته باشد به اینکه سخن به چیز مشخصی مرتبط است ل تعریف پس در اینجا موقعیت این است که معرفه آورده شد موقعیت این است آورده شد؟ وإذا لم يتعلق الغرب بذلك فالمقام للتنتيري وأدار هدف متعلق بانفراجات فسموبيت ديناسكي ذكرى هذا الشيء ولتفصيل هذا هذا الإجمال نقول وبرأي مفصل کردن إن إجماله إيه إن توجيه إجماله ميجويد من المعلوم أن المعرفة مشخصة كما عبارتاً از خاطر این که اجمالی گفته شد معرفه و نکره حالا تفصیل میده که معرفه ها چه اصلا دیگه معلوم هست که معارف برای مفصل کردن این اجمالی که گفتیم میگوین معلوم هست که معارف عبارتاً از یک از زمیر و زمیر والعلم و اسم خاص یا همون واسم الإشارة اسم اشاره والاسم الموصول اسم الموصول والمحلى بقال ال اللي ک الف لام داره والمضاف لواحد بالمذکر وانچک المضاف شوت بی کی از این چیزا کی زیک شوت مضاف بزدی مضاف بالع مضاف به اشاره مضاف باسم موصول ومضاف بكلمه ک ارفع الف لام معرفه شده است والمنادا وبلادا یک زمیر دو علم سه اشاره چار اسم موصول پنج اونی که داره شیش مضاف به یکی از اینها هفت مناده فرطه شدن؟ هفت چون بعضی از کتابها شش شیش دمیارن یعنی معارف کنی شاید من رو نمیارن خب پس اما از ذیف خودش توضیح میده تک تک این معارفه اما از ذیف بهی به لقول البقابی للتكلم او الخطاب او الى مع الاختصار اما معرفه کردن یا با فيؤتى به لكون المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبت آورده مش زمير براي انك موقيت اجا یا براي تكلم هست باننده أنا أو الخطاب یا براي مقاتل باننده أنت أو یا براي غائب هو ما الاختصار همراه با اختصار و مختصر نحو ماننده انا رجوتك که في هذا الامری وانت وعدتنی بانجازهی ماننده من رجوع کردم به شما در این کار و شما مرا وعدم اجراش دادی پس زمین رو گفت که برای چی آورده میشه؟ تكلم خطاب غيبت غيبت متكلم مخاطب و غائب والاصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين قال دار توضیح بده که اصل در خطاب این است که ضمیر مخاطب چه برای چی چیزی به کار ان يكون لمشاهد معين برای اولی به کار برود مشاهده میشه چی میشه؟ شما اونو میبینی. انت انتا مثل من که الان شما با شما نشستم میگم انت انتما چی میگم؟ معین و بعدش هم مشخص باشه. چی باشد؟ مشخص باشه. هم مشاهد باشد قابل مشاهده و هم دیگه چی باشه؟ پس اصل بر این است که زمیر مخاطر. زمیر خطاب بکار برای, برای مشاهد و معین و قد یخاطب غیغ المشاهدی اذا کان مستحبارا فی القلب و گاهی موقع خطاب کرده می شود اونی که مشاهده نیست شاهد نیست حاضر نیست زمانی که در قلب حاضر باشه مانند ایاک نعبدو ترابی پرسی خطابش مکنی این جما ای علهره بیجا الله علهره با زمیر تد خطاب با زمیر مخاطب زمیر خطاب و غیر المعین و همچنین خطاب مشود غیر معین گاهی پس و غیر مشاهد خطاب می شود یعنی زمیر مخاطب راستو کار می‌کند و گاهی غیر معین هم راستو کار می‌کند زمیر مخاطب اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه چه زمانی غیر معین براش زمیر خطاب بکار برده میشه؟ زمانی که فراگیری خطاب، عمومیت خطاب برای باشد، برای هر شخصی که خطاب او چه باشد؟ ممكن باشه پس إذا قصد زمانك قصد باشه تعميم الخطاب فراجل کردن خطاب لكل من يمكن خطابه براي هر شخصي ممكن استخطابك نحو اللئيم من إذا أحسنت إليه اساء إليك لئيم باشا ممكن شهاست. زمانی که نیکی کنی تو بس برایش بدی می برایش. برایت اینجا نیکی کنی برای هر شخصیه که خطابش ممکن است مم. بله دیگه احسنته مخاطبه دیگه با زمیر تا زمیره خطاب دیگه الیکه زمیر خطاب این کار خوب و اما العلم علم فیقتا به لإحضار معناه فی ذهن سامعی باسمه الخاص علم آورده می شود گفته بود معرفه به زمیر الان دیگه داریم کدو نوی دو بو بشه تعریف به علم أما ألم أورد مشهد فيقطع به لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص. أورد مشى ألم تحاضر شود معناه؟ ألم در ذهله شنامده با اسم خاصش، با اسم مخصوصش، با إسم تيشه نحو وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. خوب. اینجا ابراهیم و اسماعیل علم حسن چه اسم خاص حسن بس علم آورده میشه برای احزار کردن معنی آن با نام ویجه با نام چه؟ خاص و قد به مع ذلك اغراض اخره و قصد آوردن علم گاهی با اهداف دیگه ایست با اغراض دیگه است. یعنی قرض فقط این نیست که ما اون معنا رو احضار کنیم با اسم خاص بلکه به اغراض دیگه ای اسم علم آورده میشه اسم چه آورده میشه؟ که تعظیم همتون تعظیم کردن جهت تعظیم شما اسمشو بیبرید جهت تعظیم ای اسمو چکار اسمه علم بیاری فی نحوی رکب سیف الدولتی ماننده رکب سیف الدوله. تو واضح هست مانا و الاحانتی یا ماننده اهانت کردن یا غرض دیگرش چه هست کردن هست پس یا برای تعظیم و یا احانت کردن فی نحوی ذهب سخرون رف صخر به معنی سنگ بزرگه صخر واقعیه معنی لفظیش ولی جس صخر اسم علمه اسم چیه ولی چون معنای خوبی نداره برای احانتی رو اسم علمو اینجا ذکر میکنه والکنایه ان معنایی صلح لفظ له و گاهی موقع اسم علم ذکر میشه، آورده میشه تا کنایی باشد. از معنایی که اون لفظ صلاحیت اون معنا رو داره صلاحیت اون کنایه رو فی نحوی مانند تبت یدا ابی لهب خشک بود دو دست ببینید ابی لهب ابي لهب لحب ابو لهب اسم خاصه علمه ولی خود معنای لهب معنی شعله آتش لهب بهمعنی چ شول آتشه اسم علم آورده شده خاطر کنایه از معنایی که این لفظ لحب ون معنا رو دارد این لحب ون صلاحیت ون معنا رو دارد پس این علم بود توضیحش و اما اسم الاشارتی فیعتا به اذا تعین طریقا لی معنا. اسم معناه و اما اسم اشاره آورده می شود زمانی که تنها راهی باشد برای حاضر کردن معنایش ما راه دیگی نداشته باشیم ما راه دیگی برای إحزار معنى يقول اسم إشارة كي قولك بيعني هذا إنو ببان بفروش فتو بجاي إن چيز ديغي نمي تولي بي طريقة ديغي مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسم ولا اسما ولا وصف. إشارة مي تولي بي, بي چيزي كي اسم واسفش رو نمي داني اسم واسفش رو نمي داني أما إذا لم يتعين طريقا لذلك. فیکودو لآغرازی الاخرى اما زمانی که اسم اشاره مشخص نشد یا تنها راه نبود برای احزار معنا اون موقع برای اغراض دیگی کاربرد داره فیکودو لآغرازی الاخرى پس شعر آوردن اسم اشاره برای اغراض های دیگری که اظهار الاستغراب مانند ظاهر کردن استغراب و شگفتی نحو کم آقل آقل اعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاهو مرزوقه یعنی چه بسیار خردمندی کامل که در راههای زندگیش خصه شده است وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا و چ بسا جاهلی کامل که او را مرزوق می روزی داده شده مییابی هذا الذي ترک الأوهام حائرة این است که وهمها و اندیشهها را را متحیر گردانیده است ترک کرده است و سیر العالم انحیر زندیقا و دانشمنده باریک اندیش را کفر پیشه کرده است زندیقش کرده است خب اینجا اسم اشاره هادا برای ابراز شگفتی آمده بود هادا الانی ترک الامه حائرتا پس اسم اشاره اغراض شو بیاد زمانی که گذیره دو هم دادی دادیم و کمال به و غرض دیگهی که اسم اشاره آورده میشه چی هست زمانی که تنها راه حاضر کردن معنای مشارله نباشد کمال اهمیت دادن بیاد شمال عنايت ورزیدن و احییت دادن به الذي تعرف البطحاء وقته‌ه و يعرفه والحل والحرم والحرب. این است کسی که بتحاء جای قاب رو بیشتر بیشتر اسم ما این هست اون کسی که بدها جای گامه هایش را می و خانه خدا جای گامه هایش را والحل و الحل و و حرم و غیر حرم حل یعنی جایی که حرم نباشه حل یعنی جایی که حرم حل و حرم اونو می خب إن هذا إنجا كرا أمد؟ بخاطر توجه بيجه بخاطر توجه كامل خب أما وبيني إدامة بحث وأز ديگر أغراض وبيان وبيني حاله في القرب والبعد إن اسم إشارة مياد بخاطر بیان کردن موقعیت شخص حالت شخص در نزدیک و دور بودن میارند میگن برای این که کنه این کجاه؟ چون اسم اشاره داریم که دلالت بر نزدیک میکنه اسم اشاره داریم که دلالت بر توسط میکنه و اسم اشاره داریم که دلالت بر چی میکنه میگه گاه موقع این اسم اشاره آورده میشه تا جای شخص چکار کنه بشخص کنه در دوری و نزدیکی نحو باند هاو یوسف این یوسف است و ذاک اخوه و دیگر ذاک بران توسط بکارد میره یوسف است و ذلک غلامه و آن غلامش است پس یکی دیگر از اغراض اسم اشاره مشخص کردن جایگاه و و تعظیم و غرض دیگر تعظیم کردن هست إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. إذ القرآن هداية بيكون هذا براية راهن محكم ترى. وهمشين فذلك الذي يدعو اليتيم بارح. إذ ذ ذلك الذي يدعو اليتيم كتحقيقه. بالك و مثال بعدش و ذلك الكتاب لا ريب فيه و ان كتاب اس کی در شکی نہیں و ان کتاب اس کی در شکی نہیں چه زمانی این رو رو خود القرآن بدوني چون در این کہ این ذالک به چه بر بیگرده درش نظریات مختلف وجود داره ما پای به اون در هر حال این ذالکه اسم اشاره میتونه برای تعظیم آورده بشه و تحقیر و بیتونه برای چی آورده بشه؟ تحقیر آورده بشه حقیر کردن کوچک کردن لحو احاواللذی یذکر آلیهتکی این اون کسیه که پیغمبران شما معبودان شما رو اسمشون رو میبره خودشون بزرگانه مشرک به ابراهی بیجری گفتن این اونی که داره معبودای شما رو ازشون سخن بمیان میاره در موردش حرف میزنه بخاطر تحقیل حاضر رو بکار بردن یا مانند فذالک اللذی یدعو الیتی خداوند سبحان بخاطر تحقیر کردنه شخصی که یتیم رو بسخطي بيرانت بيرانت نجي او همان کس يس كي يتيم را بسخطي بيرانت الذي يدعو اليتين اينو اي ذالك را براي تحقير آورده و اما الموصول فيؤتى به اذا تعين طريقا لإحبار معنى اسم الموصول آورده بشي زماني كي تنهار راه باشد براي احزار معنایش احزار معنایش احزار معنای اون اسم مصور که قول که این سخن تو که الَّذِي کان معنا امس مسافر. اون کسی که دیروز با ما بود سفر می کند. مسافر است خب چه زمانی شما مثلا اینجا الذی رو بکار میبری؟ زمانی که راه دیگهی برای آوردن این معنا بیان کردن این معنا نداشته باشی. اذا لم تکن تعریف و اسمه زمانی که تو اسم شخصو رو ندوری زمانی که تو اسم شخص رو ندوری بیایی چیکار بیکنی؟ بگی اونی که دیروز بابابوت بود بله پس اسم محصول آورده میشه زمانی که تنها راه حاضر کردن معنایش باشد تنها راه حاضر کردن چیش باشد؟ بیان کردن معنایش باشد اما اگر نمی تعریف تریقی برای اما زمانی که این تنها راه نباشد، شما می معنا معنای استدیوی دیگری را نشون دهید. ولی اسم موسولو بیارید، اون موقع مغز اغراض دیگر کاربرداری. اون موقع برای اغراض دیگری چه داره؟ اما اگر نمی تعریف تریقی برای آن، فی کل اما زمانی که تنها برا راه برای نشان دادن معناش نباشد، برای اغراض دیگر کاربرداری. که تعلیل مانند این آوردن وردن، این لات کردن. نه، این‌الذیل عمل و عمل الصالحاتی کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بیگمان کسانی کی ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، باغهای فردوس جایگاه پذیرای آنان است. جایگاه تزیرای آنان است. با این این تعبیر اینو بگه که ایمان و عمل صالح علت دستیابی به بود به بهشت بودند ایمان و عمل صالح بود؟ بودند؟ علت بهشت بودند پس یکی از اغراضش تعلیل هست دو و اخفای الامری انا غیر المخاطب پوشاندن امر بر غیر مخاطب اونی که باش خطاب می کنی بجایید که سریح اسم بیاری اسم رسول بیاری تا مسئله بر غیر مخاطب چی بشه؟ خوشیده بشه چی بشه؟ ماننده و اخبتو ماجاد الامیرو بیهی و قبیتو حاجاتی کما احوا انچرا که امیر و من بخشیده بود برداشت. و, و حاجاتی های که ما احوام و همان گونه که میخواستم نیازهایم را براورده ساختم برآورده کردم خب اینجا ما که اسم موصول هست آورده است تا امر رو پوشیده کنن بر غیره میخواستم که چه چی چیزی گیروش اومده که چه چی چیزی میگه برداشتم آن را که امیر به بعد بخشیده بود آن را که امیر بله سبب الغرض والتنبيه على الخطا خوش دار دادن بر خطا خوش دادن بر چی بر اشتباه ابن الذين هم اخوانه کو یشفی غلیل صدورهم ان تسرعوا کسانی را که شما آنان را برادران خود میپندارید برادران خود میبینید یشفی غلیل صدورهم ان تسرعو کینهی جوشش سینه هایشان با پایمال شدن شما آرام میگیرد کینه جوشش سینه با حلاق شدن شما چی میگیرد؟ آرام میگیرد داره با الذین اونا رو متوجه چی میکنه؟ و تفقیم شان المحکوم و غرض دیگر چی هست؟ ازمت به جایگاه محکوم بهی مصند یا خبر مصند یا چه؟ نحو اینلذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمه اعزو و اطول. اون کسی که آسمان را برافراشت برای ما خانهی بنا کرد که ستونهایش عزیزتر و بلندتر است خوب اینجا الذی رو آورده تا محکوم به رو تا اون چیز رو به حصیلش خبر میده عظمتش ببخشه چکارش کنه؟ و تهویل تعظیمان و تحقیران دیگر از موصول آوردن دیگه چه هست؟ تحویل یعنی ترساندن حول جا جادادن حالا چه اون ترساندن برای بزرگداشت داشت باشه؟ تعظیمان باشه؟ و تحقیران چه برای؟ تحقیر باشه چه برای چه باشه؟ نحو فغشیهم الیم بما غشیهم اینجا این مای که در خشیه هم آمده هست برای ترساندن هست و اینجا ترساندن برای چه جه هست؟ جهت بزرگ جلوه دادن عذابه پس فرا گرفت. ترونیان را آنچه که آنان را فرا گرفت. فخشیه هم بلیم پس فراغرفت گرفت و اولیان را از دریا ما غشیه آنچه که آنان را فراغرفت این ما رو آورده است که اول عذابو چکار بکنه بزرگ استین وابده بانه و همچنین و نحو و معننده من لم یدری حقیقت الحال قال ما قاله إن تحقيرا نشي إن جي تحقيرا نشي أنكس كي ندارس حقيقة حال را يأنكس كي أز حقيقتها العباهي نداشت يأنكس كي أز حقيقتها العباهي ندارد قال ما قال میگوید آنچه که میگوید میگوید آنچه که این بخواد تحقیرش کنه میگه اونایی که از حقیقت خبر ندارد هرچه دلشون میخواد بگن یعنی چیزای ها... بی ارزش بگن یعنی چی بگن خس اینجا برای تحقیر رو بده این بود برای تحقیر و و التحکم و دیگر از اغراض موصول آوردن تحکم است، مسخره و ریشخند هست مسخره کردن است. و قالو یا ایوهاللذی نزل علیه ذکر این نکل مجلود اینجا چرا اسم مصول آوردن یا ایوهاللذی نزل علیه ذکر به خاطر مسخره کردن ای کسی که ذکر بر تو نازل می شود ای کسی که ذکر بر او نازل می شود تو دیوانه هستی 85 ديواره هست و اما المحله بال و الفلام برش اومده است به اذا كان الغرضه الحكايه عن الجنس نفسه دحو الانسان هوار الناطق به الفلام اونی که الافلام دارد آورده می شود زمانی که غرض هدف حکایت کردن از جنس باشد حکایت کردن چی اصی باشد؟ از جنسش باشد نحو الانسان و حیوان و ناطقون اینجا این الافلامی که بر الانسان آمده است منظور حقیقت انسان است منظور چی است؟ حقيقة الإنسان حيوان ناطقس وتسمى الجنسية. وإن الافلام ده مشي جنسي. أو الحكاية المعهود من أفراد الجنس وعهده يا حكاية كردن أز معهود جنسيست بله الفلام اهدی رو که خود در محب این همونه اول حکایت یا زمانی که غرض حکایت باشه ان معهود من افراد الجنسی یا زمانی که غرض از الفلام آوردن حکایت کردن از معهود باشه معهودی از افراد اون جنس و عهدش چطوری؟ اما به تقدم ببینید معهود که در عهد وجود داره در زهر وجود داره ولی این چندیر حالت داره یا این که قبلا ذکر شده باشه یا این که حضور داشته باشه یا این که شنوانده اونو بدونه یا این که شنوانده بدونه که کی هست ها؟ و ول موقع الفلام اهدی بیارن ول موقع الفلام چی رو بیارن اهدی رو بیارن بس اما اونی که الفلام داره آورده میشه زمانی که هدف حکایت از جنس باشه مانند ال انسان و حیوان و ناطق حقیقت انسان حیوان است ناطق و این الفلام بهش میگه الفلام چی اهدی چی جنسی یا زمانی که هدف حکایت از مادی از افراد جنس باشه این باسی حالت این خودش سالت داره. اما به ذکر یا این که اون چیزی که شما علفلام اهدا روش میاری قبلا ذکر شده باشه. من اندی این آیه که ما ارسال نا ایل فرعون رسوله همانطور که فرستادیم بنزد فرعون چی؟ رسولی حالا رسولی ذکر شده. فعصر فرعون آر رسوله این علفلامی که روی آر رسولی میاد این میگه علفلام اهدي. کل این علفلام که روی این رسول قبلا چه ذکر شده پس این رسول کدوم رسوله همون رسولی که ذکر شد و اما بحضوری به ذاته وایا این که اون کلمه‌ای ك... که الافلام اهدی روش میاد با ذاتش حاضر باشه با ذاتش باشه مانند الیامه اکملت لكم دینکم اینجا علی که روی الیوم بده این ال الافلام خوب ولی اون روز خودش حاضره میگه این روز دین و دارشوه کامل کردی یعنی همین روزی که ما درش حاسیم روزی که حاضره روزی که چه هست؟ حاضره و اما بمعرفت سامعیله و یا این که اونو بیشناسی و یا این که اونو بیشناسی که کی هست؟ اذ که تحت شجره زمانی که بیعت کردن با تو زیر درخت، اینجا الفلامی که روی شجره اومده الفلام اهديه ولی میدونند که کدوم درخت؟ کدوم؟ اینجا درخت قبل از این آیه ذکر نشده اونجا حاضر هم نیست، ولی تو ذهن سامه هست. و تصمه ال اهدیه این نوع ال چی اهدیه پس اون الی که غراز حکایت از جنس بود بشمی میگفتن الفلام جنسی این الی که غراز از اون حکایت از معهود هست که در هر سحالت باشه که توضیحشون شد میگن الفلامه اهدی او حکایتا انجمی افراد الجنس یا یا ور آورده میشه و غرض از اون حکایت کردن از تمام افراد جنس باشد ببینید الفلام آورده میشه غرض از اون حکایت کردن از خود جنسه وجه حکایت کردن چیه؟ غرض از آوردن حکایت از خود جلسه مانند الانسان و حیوان و این نه درسته ولی اینو الان آورده توضیحش جلوتر خب پس یا الافلامی که آورده میشه غرض حکایت کردن از جلسه اونه باندی ال و حیوان و ناتو یعنی جلسه ایوان ه... جلسه انسان حیوانی چاست یا حکایت غرض از اون حکایت کردن از محود هست که از افراد جلسه که از افراد جلسه یا این که غراز از اون حکایت از تمام افراد جلس حکایت از تمام افراد جلسه. معنان ده ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر همان انسان در است یعنی کل انسان یعنی چی؟ برای و تسمه این ال چه نامیده ده برای تشخیص این ال این که سر جاش بشه کلمه کل آورد سر جاش بشه کلمه چی رو آورد؟ إن كل الإنسان الحمد لله ماله كل الحمد صار جاي إله فلان مشي كار كل آبار يا مش بعد ذول استثناء آبار كإن جاء استثناء ودين إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آبروا خب زمان استثناء بيات دمانك عموبيات داشت باشي دمانك چه داشت باشي خب وقد يرادوا بآله الاشاره الى الجنس في فرد ما وغايبه منظور از علم اراده از اشاره كردن به جنس اشاره كردن به در فردي از افراد لحظه مانند ده ولقد ابر على الذين يسبدوا فما بيت ثمتا قلت لا يا و گاهی گذر می کنم از پست فحش میدهد پس رد شدم از اونجا گویا که با من ندارد. گویی که با من اصلا ندارد خب قلت لا يا با خودم گفتم که این اصلا با من با منش نیست اینجا منظور ما رد می بر شخصی پست بر شخصی که ببینید اینجا این الفلام اینجا اومده است اشاره به جنس لعیم داره اشاره به چی داره منظورش لعیمی خاص نیست متوجه شدید رد می از لعیمی از چی؟ از پستی به اونایی که, که تو اینو آورده در ترجمه دقت دقیق این بیت در کتاب جوانگل بلاغه هم اومده است اونجا حسد ارفان در کتاب ترجمه کرانه هست اینو اونجا ترجمه‌ش ترجمهش آورده و توضیح داده در این رابطه خلاصه وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّهِيمِ يَسُمْبُرِي فَمَا بَيْتُو فَمَّتَا قلت لا يَعْنِينِ پس اینجا منظور از ال اشاره کردن به جنس هست در فردی از افراد جنس در فردی از افراد جنس وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّ بِالْخَبَرًا افاد القصر یه جا نقطه دیگه رو داره تنسی بیده بگه زمانی که اونی که داره خبر واقع شده چون افاده قصر می کند قصر معنا برای اون مسند الیه معنی ده و هو الغفور الودود. و هو الغفور الودود. اینجا اگر شما دقتی داشته باشید غفور بودن و قصر کرده بر او، بر چی؟ و اوست آمرزنده دوست داشت. اینجا آره دیگه هو مبتدای الغفور خبره میگه هرگاه اونی که الفلام داشته باشه خبر باشه قصر رو بیرسونه افعاده قصر میکنه و الغفور الغفورو الودودو و اوست بخشنده میبین این, این معنی رو یکی از ترجمه های ایرانی کرده ولی واقعا تو سرفونه قوی بوده در مغزارش وجود داره تو وبایل‌ها ها ترجمه قرآن خیلی دقیق معنی کردن من این معنی ها رو بعضی از این قومی ها معنی کردن در معنی ترجمه تحت لفظی میگم واقعا قوی بودن با توجه به که در ادبیات عرب قوی قوی بودن یعنی شما در ترجمه قوی ناچار بود هم ادبیات ایرانی قوی باشه و هم ادبیات دو ادبیات هر دو ادبیات که از که از اون زبانی که انتقال بدی چی به او زبانی که داری چکار میکنی؟ ترجیبه میکنی و اوست بخشنده و دوستدار دار پس اینجا خبر ما چی داره؟ الفلام داره خبر چ داره؟ الفلام داره لذا افاده قصر میکنی و اوست غفور غفور اوست خب پس اینجا اونی رو که الفلام داشت آبر توضیح داد خب اینو در کتابه کاترو دیدایک شما در حال حاضر دارید میخوریدش اونجا الفلاما رو به ایدیه صاحبین تفصیل توضی داده ولی ما هنوز نخوندید شما هنوز انواع الفلا الفلا به جنس عهد و استقرار و چه که اینا رو اما برنجلوتان و عمل فیقطع به اذا تعین طریقا لاحضار معناه ايضا اما مضاف بمعرفه مضاف به چیک بمعرفه فيقط آورده میشه اذا تعين طریقا لاحضار معناه زمانی که تنها راهی باشد برای احزار معنایش همجوری پس مضاف بمعرفه هم زمانی که تنها راه بود برای احزار کردن معنایش برای حاضر کردن معنایش اون موقع مظافه به معرفه استفاده میشه که کتاب سیبوه و تو کتابی وجود داره چطوری بخوایی به اون افراد بیان کنی که این چه کتابیه؟ فقط دین میدونی که مالکیه، دین کتابو سیبوه بطاعت شدید؟ پس مظافه به معرفه هم آورده میشه زمانی که تنها راه برا احزار معنایش باشد مانند کتاب سیبوه و سفینه دوح که کتاب سیبوه و سفینه دوح و سفینه دوح شو بخوای سفینه سفینه رو معرفی کنی؟ چی بگی؟ اضافه بگی به؟ بي؟ دوح اسم شکرگه نمیدونی بي بخوای چی بگی؟ اما اذا لم يتعين لذلك فيكون لاغراض اخرى اما زمانی که تنها راه احزار معنا نبود اون موقع برای اغراض دیگه‌ای به کار میره به معرفه اون موقع برای اهداف دی... شما دیدید مثلا مضاف به شده و میتونستان از راه دیگری همین جمله رو بیان کنن این لفظ چکار کنن اون موقع بدون که توش اغرازی وجود داشته بوق با یک بار میام کتاب الله فهم عظمت این کتابو بیان کنم بیت الله نه که این خونه مال خدای عزیز جهات بلکه میخوام عظمت این بیت چیکار کنین یا شهر الله شهر الله اله خوب خب اما اذا لم يتأیّل لذلك فيكون لأغراض أخرى كتعذر التعدد او تعثره بانده محال بودن عدد عدد مانند چی؟ مانند زمانی که شمردن تک تک افراد معذور باشه ممکن نباشه او اصوره یا شمردن تک تک افراد چی باشه؟ سخت باشه نحو اجما احل الحق علاقه كذا. شما بیاید این اهل حق تکی تکی اسم ببریا این امکان لذا بگی اجماع اهل الحق علی کذا اجماع کردند اهل حق بریجیس و اهل بلدی کرامن اهل شهر مردم شهر بزرگوارن کریمن پس که از اون اغراض مضاف کردن به معرفه زمانی که شماردن تک تک افراد یا محال باشه یا سخت باشه. والخروج به تبعیت تقدیم البعض على البعض یکی دیگر از اغراضیاست خارج شدن از یا رها شدن از از چهasts از تبعات مقدم کردن بعضی بر بعضی دیگر. اگر شما بیایید افرادو اسم ببرید مضافش نکنید تکی تکی نام ببرید محرمینی که شما یکی رو مقدم نكنی بر دیگر این تبعات ناپسندی داره تبعات بلی داره تبعات چی داره لزبا خاطری که از این تبعات جلوگیری كنی بیای مضافش بكنی مانند این مثال حب عرب و مرائل جند امیران جند حاضر شدن اگر تو بیای بگی زیر بعدا مکر بعدا فلان شبوس البرائه جوی آورده یک شرحی که شما دارید پاورتی این در شرح این قسمت آورده میگه اگر اومدی شما افرادی رو مقدم کردی بر افراد دیگر این سبب خشم بعضی میشه اونای که در آخر ذکر شده اونا که چی شدن والله اعلم پس،, پس خارج شدن رها شدن از تماعات مقدم کردن بعدی بر بعض دیگر و تعظیم للمضاف و یکی دیگر از اغراز بل مضاف به همین تعظیم کردن مضاف هست مانند کتاب خلطانی حضر نامه شاه رسید او المضافله یا تعظیم پس ببینید یکی از اغراض تعظیمه حالا این تعظیم یا مال مظافه ماننده کتاب سلطانی حضر اول مظافه اله یا تعظیمه مظافه اله ماننده هادا خادمی این خدمتگزار منه بخواد به از عظمت بده. بخواد اینجا چرا تعظیم کنه او غیری ما یا تعظیم برای مظافه نبرای برای اله برای چیز دیگه یه نحو اخو الوزیر اندی برادر وزیر نزد من است برادر وزیر نزد من است بله پس اینجا تعظیم نه برای مضاف است و نه برای مضاف إلیه جا نهداره خودشو تعظیم میکنه برادر وزیر خونه منه نزد منه ببین یا این تعظیم برای مزافه یا برای مضافه یا برای غیر از مضافه و مضافه او غير ہیبا یا تعظیم برائے غير از مضاف و پیر حب اب به مضاف و مضاف الیہ بر بھی کر دے و تحقیر و حدف دیگر تحقیر کردری لالمضاف یا این تحقیر برائے مضافه مانند هذا عبد اللصی اجا ابر کہ مضاف بالاسس تحقیرش کرد این قصری دوست اول مضاف الیہ یا تحقیر برائے مضاف الیہ مانند دے اللص رفیق هذا دوزد دوسته إلي رفيق هذا رفيق هذا لا لا إن رفيقه خبره الليس مبتدا رفيق خبر الليس رفيقه هذا دوست رفيق إلي جو بلغد قد كنت. دوست رفيق إلي دوست مش مبتدى رفيق مش خبر مضاف لسه وحاذا مضاف لليه تي رفيق مضاف قاضا مسافر له ال لسوب ابتدايه ال لس رفیق قاضی حجرت خوب ابتدايه دیگه چی مضاف نه دیگه نه دیگه مضاف ک الف لام نداره ال لس الف لام داره تو کجای کاری مضاف الف لام میگیره خب بریم نه اون داستان شده ال لس اسم فاعل معنویه لفظی نیست مضاف دو نوع داری لفظی و معنویه بحث اون ولش کنید فیلن او غیره یا تحقیر کردن جزء از مضاف و مضاف رله نحو اخو لسی اند امر برادر دوز نزد امر است اینجا نه اخو رو که مضافه میخواد تحقیق کنندنه لیس رو بلکه جز از مضاف و مضاف رو که امره هست والاختصار الاختصار و یکی دیگر از اغراض مضاف چه هست؟ اختصار هست لضیق المقام بخاطر تنگ نابودن جایگاه بخاطر چی تنگ بودن موقعیت. اینا رو قبلا نحو هوايا مع الركب اليمانينا مصعد جنيب وجثماني بمهكة موتق هوايا يعني معشوق يماني بدل أن يقال الذي أهوه بجائن كبقى انكسي كمنع ربي خام قفت هوايا مخاطر تنبودن موقيات مخاطر كي؟ بقى هوايا معشوق أم مع الركب الیمانی دا با کاروان یمنی ها مصعد دور می شود جدی و جلودار می رود جلودار میرود و جسمانی در مکه در حالی که پیکر من جسد من در مکه بند است و اما المنادا، اما منادا چرا آورده میشه؟ فیقتا بهی اذا لم یعرف للمخاطب عنوان خاص منادا آورده میشه زمانی که شناخته نشود برای مخاطب انوانی خاص اونی که شما خطابش بیکنی انوانی خاص شناخته نشده باشه لذا بی این مناداش بیکنی، نداشت بیزنی ها؟ نحو يا رجل نحو نكره باب نادا بخي ما عرفه شكولي باب نادا بخي شكار شكولي نحو يا رجل ويا فتا وقد يؤتى به للإشارة إلى التي ما يطلب منه پس منادا جایی آورده میشه که یا زمانی آورده میشه که انوانی خاص از مخاطب شناخته نشده باشه بانند یا رجول یا فتا و گاهی موقع منادا آورده, آورده میشه تا اشارهی بشه به علت چیزی که از مخاطب خاصه شده است و قد بهی لیل اشاره الیلتی ما یطلب میر وگاهی آورده میشه منادا تا ای شود به علتی که از منادا خاصه میشود از مخاطب خاصه میشود نهو یا غلام احضر تعابه این غلام غذا را حاضر کن پس اینجا آورده شد به خاطر الیلتی که از غلام خاصه شد از غلام چی شد؟ یا خادم اسرج جل ای خدمت گزار اصب را زیب کن اصب را کن بخاطر علتی که از خادم خاص شده بود اول غرزین یمکنو اعتبارو ها هونه بما ذکر فرنده دا یا بخاطر اغراض دیگری که امکان اعتبار اعتبارشون اینجا در اون چیزایی که در بحث دا شدهن شدن؟ ذکر شوند و اما نکره فیقطا بها ایذا لم يعلم للمحکی عنه جهه تعریفا اما نکره زمانی آورده بشود که محکی عنه محکی عنه اونی رو بیان که در رابطهش سخن گفته میشه حکایت میشه اما نکره آورده میشه زمانی که برای محکی عنه بله جهتی از جهات تعریف دانسته نشود جهتی از جهات معرف دانسته نشود پس نکره زمانی آوردنی شد که با شیوهی از شیوه های معرف دانسته نشود که قولی که جاها رجل اذا لم یعرف ما یعینه من علم او صلت او نحوها مانند این سخنت که بگی آمد مردی آمد مردی خود چه زمانی کلمه مردی رو به کار میبری؟ زمانی که شناخته نشه از محکیهن، از اون رجل اون چیزی که رجل رو بیاد معین بکنه رجل رو بیاد چی کار کنه؟ تعینش کنه، شناخته شدهش بکنه بین علم، اسمی خاص او یا موصولی مصولی نداشته باشه مثلا اگر شخصی درس میخونه تو اسمشو بلد نیستی میگی جااللوی ید یاد جااللوی سلافل بسجه مصولشو بیاری سله شو بیاری چکار میکنی؟ ولی نکره اونیه که علمی نداره سلهی یا چیزی دیگهی که شما بیایی اونو تقیم کنی نداره اما نکره توفیوطا بیها اذا لم یعلم عنه جهتو تعریفه اما نکر آورده میشه زمان که دانسه نشده باشه شناخته نشده باشه. برای محکیئن شیوه تعریفی جهت تعریفی که قولی که جاها هنا رجلن ما سخنت که بگی اوبد جا مردی اذا لم یعرف ما یعینه زمانی که شناختر نشود چیزی که اون عنه رو معین بکنه از جمله علم یا سله یا امثال علم و سله و قد یعتبه ها لأغراض اخره و گاهی موقع نکره به خاطر های دیگه آورده میشه و گاهی موقع بحث نیست که تو شیوه از شیوه های معرفه بودن اونو شناسی بلکه به خاطر اغراض دیگه نکره آورده میشه تکثیر و تقلیل مانند تکثیر زیاد نبودن و تقلیل و کمدانسن نحو لفلان مالون فلانی مال دارد اینجا مالونو بخاطر تکثیر چون مال زیادی داره نکره آوردی لفلان مالون و من الله اکبر و رضوان رو هم برای تقلیل آوردی و رضایتی کم از جانب الله بهتر است لفلان المال ورزوان من الله أكبر مال كثير ورزوان قليل والتعظيم والتحقير ويكي دیگر از اغراض های نکرداردن تعظیم کردن وتحقیر کردن اسمان ده له حاجم ان كل امر يشيله وليس له ان طالب الارض حاجم او در برابر هر چیزی که او را مانع بزرگی دارد او در برابر هر چیزی که او را می آلاید آلوده میکند، کند شینش میکند، کند آلودهش می کند مانع بزرگی دارد خب اینجا حاجب نکره اومده برای تعظیمه برای چی؟ ولیس له انقالی بالعرف حاجبو و در برابر طلب و جویندگی نیکی هیچ مانعی ندارد هیچ مانعی یعنی جنبال نیکی که باشه هیچ مانعی ندارد اینجا براد تحقیره اینجا حاجب بعدی که نکره هست چه هست برای تحقیر که ذکرش کرده ول العبوبی بعد نفی و یکی دیگر از اغراض نکره آمودنه یعنی که معنای عموبیت رو و این چه زمانیه بعد از نفیه نحو ما جاءنا من بشیر نیامن نزما هیچ بشیری فا این فی سیاق نفی تعمو چون نکره در سیاق نفیه معنی آموده معنی چرو بیده؟ و قصد فرد معین او نوع كذلك و یکی دیگر از اغراض نکره آوردن اراده کردن فرد یا نوعی مشخص تا بر نوعی از انواد دلالت کنه تا بر نوعی از والله خلق کل دابت من ماه و الله خلق کرد هر جنبنده ای را از چه؟ از آب و الله خلق کرد هر نوع از انواع جنبنده را از نوعی از انوای آب، از نوعی از انوای آب و اخفاء و و یکی نیگر از اغراض نکره چه هست؟ اخفای امر هست نحو قال رجلون این نکه انحرفت عن سواب تو بخوایم مسئله رو چکار کار کنی؟ بپوشونی معنی که شخص گفت تو مرا از حقیقت منحرف کردی مردی گفت قال رجل مردی گفت تو مرا از حقیقت چکار کردی تخفی اسمه حتی لا الحقهو اذا اسمش رو پوشیده میکنی رجل رو اینجا تا عذیتی به او وارد نشود پس یکی از اغراض نکره به کار بردن اخفاج هست پوشاندن امر هست تا اینجای کار به حول و قوه الهی تمام شد و میدواریم که الله به زودی زود این کتاب تمام شود